شما در راه آهن تهران کار می کنید؟ بله، من کارمند راه آهن هستم من در مورد جاده ها و راه های ایران چیزهایی می دانم. اما در مورد راه آهن چندان اطلاع ندارم. راه آهن ایران حدود 120 سال قدمت دارد قدیمی ترین راه آهن ایران بین تهران و شهر ری ساخته شد اما اکنون شهر ری بخشی از کلان شهر تهران است. بله، اما آن زمان طول این راه آهن 8700 متر بود. یک فرانسوی مجری این طرح بود. پس این راهن خیلی طولانی نبود؟ نه، پس از آن نیز بین چند شهر دیگر نیز خطوط راه آهن ساخته شد. پس تا آن زمان راه آهن سراسری ایران هنوز ساخته نشده بود. در سال 1938، راه آهن سراسری ایران افتتاح شد این راه آهن بندر گز کنار دریای خزر را به بندر امام خمینی در ساحل خلیج فارس متصل می کند پس سول آن خیلی زیاد است بله حدود 1400 کیلومتر. پس اکنون وضعیت راه ایران بسیار متفاوت است و احتمالا شرحهای مختلفی به راهن را دسترسی دارند. بله همینطور است، حتی در چند مسیر قطار برقی فعالیت می کند.